آیا می توانم با اتوبوس به میدان امام خمینی بروم؟ بله. می توانی با اتوبوس به آنجا بروی. ولی میدان امام خمینی خیلی دور است. پس با تاکسی میروم. با تاکسی زودتر میرسم. امروز خیلی عجله دارم. چرا با مترو نمیروی؟ ایستگاه مترو نزدیک است. چه خوب. پس با مترو می میروم. کجا می توانم سوار مترو شوم؟ اول این خیابان ایستگاه متروست. خیلی خوب است که تهران مترو دارد. خیابان ها شلوغ هستند. متروی تهران چند خط دارد؟ شهرهای دیگر ایران هم مترو دارند؟ بله. مهندسان ایرانی در شهرهای بزرگ مثل مشهد و اصفهان مترو می سازند سازندگان مترو ایرانی هستند؟ بله. در تهران نیز مهندسان ایرانی در حال ساخته خطهای دیگری برای مترو هستند. من فکر میکردم که مهندسان خارجی برای ایران مترو میسازند. نه. ما ایرانی ها خودمان کشورمان را میسازیم. به همین خاطر ایران خیلی سریع پیشرفت میکند.